بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه با طرق خداشناسی و معرفت بحث کردیم یکی از آن طرق روش جهانشناسی بود اسمش رو گذوشتن استفاده از روش آیات و نشانه استفاده از آیات و نشانه ها برای طیف خاصی از جامعه قابل استفاده است بیانش به طور مبسود گذشت طریق دوم خداشناسی استفاده از اون حدیث معرفت نفس من عرف نفسه فقط عرف ربه و تفاسیر مختلفی که برای این حدیث شریف شده بود بیان شد. و فکر می‌کنم که جای توضیحش تا قنون خالی بود که الحمدلله ما این توفیق رو داشتیم. پس از جان شناسی امکانش بود برای یک ای از خودشناسی هم ممکن است اما نه برای همه. بازم برای همه نه کسانی که به این ساحت برسن به خودشناسی برسن حالا به هر یکی از اون معالی که ما گفتیم اما طریق دیگری هم برای خودشناسی، خداشناسی وجود داره و اون روش مجاهدته مجاهدت در سوره مبارکه بود آیه 69 خداوند می فرماید ولی از این جاحت و که که در راه ما مجاهدت بکنند ما راهامون بهشون نشون میدیم. ما اونا رو به راهامون هدایت می نه نشان می دیم ببینید شما ممکنه مثلا برای اونجا این راه نشون میدم؟ از آدرس که می یا مثلا خیابون ولی هست کجاست یه ضرب را تقصیب میکنه میگه اینجا دست راست بیرون اون دست چپ بیرون مستقیم میده یه میگه خیابون ولی از خودی میگه دنبالم بیا لنهدین نهم نه صبحانه میبرد اونجا نهی که بدشون بده ولی مجاهدت خیلی راه خوبیه اولا. محصولش معرفت حضوری حضرت حقه معرفت شهودی حضرت حقه و نه معرفت حصولی و عقلی هر کسی در این راه موفق بشود برای شناخت خدا به خوب خدایی میرسه این همون محصول همون تفکره که بیان مبارک شده بود، متعدد فرمود. لامه ابوتراب بل لم من خدایی که ندیدم نپرسیدم یه معرفت شهودیه. و با مجاهدت حاصل میشه با مجاهدت حاصل میشه بخوام راجع به مجاهدت صحبت کنم بیشتر بحث سلوکی میشه اما دو سه نکته رو خدمتتون میگم اما مجاهدتی که به ما میگن اتفاق بیفته و باید هم بیفته اگر کسی بخواهد در مسیر قرب خدا قرار بگیره و به حضرت حق برسد و سال حضرت حق را پیدا بکند باید نسبت به خودش سوء زن داشته باشد در حال جامعه ما یک خودشیفتگی فراوان دارند و به خودشون حس زن دارند. اینو برای که بدونم خوابید یا بیدارید ابتا همه تون که برای خواه همه مقافلیم برای که بری بیرون بگیم آفلانی گفت سو زن داشته باشه سو زن به غیر که حرام شرعیه سو زن به غیر حرامه یه مرد بلند بگید که سو زن به غیر چیا اما برای مسیر سلوک سو زن به خودت و نه خوشبینی به خودت ما دقیقا مرعنگ به دیگران سو زن داریم که زندگی ها را از هم پاشونده و به خودمون مست زن داریم غلط مقاله گوش پیمودن مسیر غرب پروردگار و دستیابی به مقام وسال محبوب با حسد زن خیش و خوشبینی به نفس حاصل نمیگردد که نفس امر کننده به بدی ریشه همه مفاصد باطنی و مانع سیر و سلوک الله است و این نسخنی به گذاف که فرموده بنده پاک و سرفراز در مجاهده با نفس خیش پیامبر مخلص خدا حضرت, حضرت یوسف است که پس از آنکه از هر تهمت و عیبی مبرا شد و معلوم گشت که او را هیچ قصور و تقصیری در کار نبوده باز در مقام سوئزن به نفس و متهم ساختن آن فرمود و ما اوبرره و او نفسی ان النفس لتون به سووب همه آب که از آسیاب افتاد گفتن اقا تو مثل گل پاکی بعد ما او و نفسی من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم. چرا که نفس قطعا به بدی رحم می کند اینا نفس لأمارتون بسو الا ما رحم ربی مگر کسی که خدا بهش رحم کنه اینا ربی غفور رحیم سو ازن به خودش صحیفه پر اجائب تاریخ سرشار از حکایت است که به سبب حسن زن نبخیش گرفتار عجب و قرور و صفات رزیده گشتن که دامن متدینین رو گرفته متدینین خدای حقیقی را بنده نیستن خدای متوهم را بنده هستند متدینین مغرور و دوچار عجب شده ها گرفتار عجب و غرور و صفات و رزیده گشته و از ادامهٔ مسیر در راه حق و رسیدن به سعادت ابدی باز مندن. و نیست کسانی که با سوء زن به نفس خود را از ورطهٔ که خشم و غضب رهانیده و به فوز نجات دست یافتند اما ها جعفر چنین بیفرم باید حالا یه حدیث میگم من یه نکته رو بگم و اون این, این که که زن به خودشون دانن از زر سیستم فکری دوچار رجاء به خدا میشه که سوء زن به خودشون داشته باشن از سیستم فکری دوچار خوف از خدا میشه اگر خوف در خدا بخواد در کسی حضور و ظهور و تجلی پیدا بکنند با طرف خودش شکار کرده باشه به خودش سو زن داشته باشه بدی اگر خودش سو زن نداشته باشه دائما طرفدار رجاعه اینم مطلبی بود که کم در جایی پیدا بشه بس نگرشتون اگر بخواد سو در واقع نگرشتون اگر حقیقتتون بخواد از نظر کنشت به شما را به خوف از خدا باید در نگرشتون دوچار چی باشید؟ سو زن به خودتون باشید ولی اگر شما از نظر کنشت طرفدار رحمت بی حد و حسر حضرت ده قصید این در واقع معتوب به اون نگرهش چی هستش حسن زنه نهایتا آدم های نازنین میگن خب من چه کردم که موجود به رحمت خدا بشم نهایتا اینو میگن من چه کردم خب من چی دارم وقت آقا میفرماد به که من دستم خالیه امیرون موبی شما بزرگان ما میگن دستم و خالیه یعنی حسد زن به خودشون ندارن رحمت خدا رو مطالبه میکنند منطقه نه به حسب حسد زن به خودشون نه طلبکارانه انصافا امیدوارانه من که خالیم من که زعیفم من که نمیتوانم پس از تو میخواهم، نه طلب کار باشد، فرق است، این رو تو وجود نازمین عزت موسف بن جعفر در داستان، در یک روایتی داستان سوء زن به خود رو نقل بکنه که این سوء زن به خود کار میکنه پر بودن این نره فی بنی اسرائیل ابدا باربین سنه چهر سال بندگی خدا داشت صغرب قربان هم. بعد یک قربانی رو در راه خدا پیشکش کرد فرم یغبل می ازش قبول نشد آش شما یه دونه عید قربان قربانی میدید توقع دارید که عالم آدم به واسطه اون یه قربانی اصلا فداای شما بشه 40 سال بندگی کرده یه قربانی داده قبول نشده فقال النفسهی بلنفسه برگشت به خودش گفت ما اوتیت من که و ما با الا لکه گفت این تیر روزی که بر سرم آمد آمد مگر از جانب تو و این گناه جز برگردنتون نیست قال او حالله از زوجن علی از درون ملهم مله هم شد ض مکل نفسیک من عبعادت ك این مثل این که تو نسبت به خودت داشتی از چهل سال بندگی من بهتر چرا چوب چه سال بندگی ممکنه اساس بر اساس عادت اتفاق بیفته چون چه سال بندگی ممکنه برای اساس یک لذت معنوی اتفاق بیفته بترسید از اون زمانی که بگید آقا من چه نماز شبی میخونم کیف میکنم چرا؟ چون در واقع نتیجهش به خاطر اینه که شما چون کیف میکنه میخونی نه چون باید بخونی میخونی این خیلی خطرناکه خیلی خطرناکه حواسم هست درم چی میگم میخوام بحث کلام بگم نرفتم تو بحث سلوک اما یکی از راه شناخت خدا مجاهدت و مجاهدت گفتیم از کجا حاصل شود؟ از سوء زن بخیش و گفتیم اگر یوسف صدیق است و ببینید خیلی مهمه با تمام ید و که داره میگه توفنی مسلم ما من تسلیم از دار دنیا برم این تسلیم از دار دنیا برم و علیه همی به صالحین من و ملحقم به صالحین نماز کم داشت یعنی یوسف روزه کم داشت یوسف بندگیش که کامل بوده که ولی سو زن میگه طرف فنی مستم و خدا من آقابت به خیلی داره دنیا برن چون این نفس لعمارتون به سو الا ما رهیم ربی این نربی غفور رهیم چون دائمان درن به خودشو سوزن میزن نه به عالم آدم اون که من و تو دارین نمازه اون که من و تو داریم روزه است نه اینکه اینا اهمیت نداره نکنه که بعد از 40 سال به ما بگن این عبادت چهر سالت یک پر سبزی ارزش نداره خیلی خطرناکه که 40 سال بعد به ما بگن این بندگی تو بندگی نبود کیف خودت بوده پس چرا به من نرسیدی به خاطر که تو من نپرسیدی تو کیف خود تا انجام میدادی آ این آیه در خودمون متجلی بکنیم حرف تمام است سور مواقع فاطر پونزده یا ایوه الناس انتم الفقراء الله همین فقر اینو نشون بده. اینو به خدا لشون بده. والله هو الغني الحميد. خدا بی‌نیازه. خدا ستوده شده است. ان نیازت نشون بده. نیازت نشون بده. ما دوچار غفلتین یک عبارتی رو از مرحوم آیت الله آقای علامی تباتبایی علام آقا شریف بخونم در همین باب سلوک شان توصیه اینه سالک باید متوجه باشد که در جنگ انفسی به طور کامل جنگ با نفس به طور کامل از عهده جنود شیطان برآید و آثار نفسانیه خود را به کلی قطع کند و اصول آنها را از زوایای مخفی خانه دل برکند چه اگر ذره‌ای از حب مال و جاه و منصب و کبر و شخصیت طلبی و خویشتن دوستی در او باقی باشد هرگز به کمال نخواهد رسید لازا بسیار دیده شده که کسیری از قوملین پس از ساله ها و مجاهدت به کمالات نرسیدن و در جنگ انفوسی شکست خوردن و علت آن این است که ریشه بعضی از صفاد هنوز در خانه دلشان باقی بوده لیکن پنداشدن که آن ریشه به کلی از بین رفته لذا در, موقع در مواقع امتحان الهی، و در مزان بروز نفس و جلوی آثارش آن ریشه ها ناگهان جوانه زده و نمو نموده و کار سالک را ساختن. خیلی عالی این کلام. ما از امتحان میترسیم دیگه. درست نه؟ نه امتحان بنده. من که امتحان نمیگیرم. از امتحان مدرسه و دانشگاه نه. از امتحان خدا میترسیم دیگه. میترسیم یا نمیترسیم؟ خب به خاطر اینکه ما در اون جنگ درونی پیروز نشدیم اونه ما تو اون جنگ درونی پیروز نشدیم اگر من در اون جنگ درونی پیروز شده باشم گوشی شیطوری گرفته باشم انداخته باشم از زبانی های قلبم بیرون و نفسو به طور کامل مهارش کرده باشم خود آنه که کسی سرطانی بگیره پشیمی درمانی میکنن بعد راديو تراپینگ می‌کنم بعد دوباره یه آزمایش بدم آزمایش تو خوب پاک شده دیگه مها مبارزه می‌کنه ولی خب اون پاک شده هر دیگه نداریم دستمون برای که خب پاک شده دست بیاد خدا عزاد امتحان میکنه بعد تو امتحان چی می‌شی می‌فهمی خب پاک نشده چند سال گذشته پس خب پاک نشده خوب پاک نشده، این حواست باشه امتحان خدا یعنی که چیه اقام خوب پاک شده یعنی مهر استاندار بخوابت بزنه برا تو نمیپذیر بعد چرا خوشحال میشه؟ میاند وجود و هر کی که, که به زور آشون ها نزدیکتر میشود چهرهش برا فروختوتر میشود، خوشگلتر میشود چرا؟ شما فهمیده همه چی درسته پنجه هفت سار من درست اینو رو فهم میده بسید چی خوش آن نمشه چلی را ابو سن قرمتر ایرادش دوشی یه عمر داره ادعا بکنه که ما اینی ما اینی ما اینی ما اینی ما خب حالا بیا بیدم بیا بیدم خب بچه رو گرفت اتش چی چی چی خم با ابروش ذراشون هرچی نزدیک در به ظهر میشه؟ خوشگلی تر, تر, خوشگل یعنی تر میشه چرا برای نورانی تر میشه خوشگللی نورانی ترش چرا میگن ازو به لونا انسان نیستن قطعا هستن میگه اوننا فوق انسانن نه قطعا نیستن اون مافوق انسانن فوق انسان نیستن یعنی موجود دیگر نیستن انسان ماافوقن نه فوق انسان ولی چرا خب پس روندش با سختی و مشکلات با من فرم میکنه برای خودش امتحان کرده خودشو برای که مبارزی کرده با خودش وقتی بخواد امتحان بده خوشحالی چرا نکشه بچه زرنگ ها از امتحان ها نمیتره اصلا هیچی هم نداره ما تو زندگی اون بچه زرنگ نیستیم اما اید لازم هستید که شما خودتو خوب بشدتی زواجای وجودی خودتو بشدتی کنیم بشدتی معلومه بعد شیطان رو بشدتی ببین کی دشیه خودم خب که بشدتی معلومه بعد نفسو بشدتی ببینم اون شیطان اتاش گونه ها کنی؟ خب اونم کنیم بشدتی پس خب ما چی کار میکنیم ما چی کار داریم میکنیم مثل ربات هستیم که داریم ادای نماسون ها رو در میاریم هیچ حسی نداریم باری آنچه خداوند از بنده درگاهش میترود اظهار عجز و نیاز و درک و شهود فقر و فرای خیش در برابره قناع و عظمت این درک کنید چیستی و این حقیقت ممکن است با عبادت هفتاد ساله آمیخته با شواعب عجب و غرور و منیت که خود را مستقل در عبادت خیش پندارد و برای خیش وجود و هستی در کنار هستی مطلق عالم مشاهده کند هستی مطلق عالم مشاهده کند حاصل نگردد با حسن زن پیدا نمیشه ولی با سوء زن چرا اما با سوء زن به و سرزنش نفس به کفایت وقت در حسن زن ببینید طرف چه گندی زده امام صادق السلام میفرماید از عالمون آ یا عالمی میره پیش آبدی فقال لهو کیف صلاتک از ایسای سآل که نماز چجوریه گفت فقال مثلی من سوال میکنی فقال مثلی یس عن سلاته آدمی مثل من از سال میشه میشه و انا عبدالله و مونز کذا و کذا در حالی که من از قبل از مثلا فرض کنه دوران بلوغ نماز میخوندم یادش هرکی بندگی میکرده قال كيفه بو کا اوک او چجوریه دیگه نگو مثل من اد گلیاش سوال میشه اینقدر اعتماد به خودش داشت که پاسخ میده قال اب کی حتی تجری دموعی اون نگا گریه میکنه ها جاری میشه حال خودشو مراقبه عکس برداری میکنه از خودش اکی نماز خوندم اکی روزه گرفتم از که هجاب همین رو یاد شد فقال اله حال آلم آلم بهش برگشت کن فا این نزه که که نمیخواد گریه کنی اینجوری خنده تو و انت خائف در حالی که خائف باشی از خدا افضل من بقای که برتر از گریه توست و انت مدلون در حالی که تا خدا طلب داری کی من گریه کرد کیمستو من نماز کن رو کی اصلا من تو رو برستیده اون بار بخند برای خدا بترس افضل است از گریه در حالی که از خدا چی داری خواه؟ طلب داری ما همه یعنی اون طلب کاران هست خدا یا به نماز شبی که خاندم یه نگاهی بکن و بشگره کدوم نماز اِنَّ الْمُدِلَّ لَا يَسْقَدُ مِنْ عَمَلِهِ شَيْعُونَ آدمهای طلب کار از خدا هیچ کدوم از عملاشو بالا نمیدی خستگی مفردی هم بهش دست میده یه چونی کارو کرده سخت اجمالا زندگی کرده در مسیر <تصفح> به نظر تو سخته دیگه سخته دیگه جانو میدونه سخته. منتو کجاش سخته؟ جهت رو پیدا کنید. اگه جهت رو پیدا بکنید دیگه سخت نیست. مادام که زندگی بندگی و عبادی شما جهت نداشته باشه برای اینکه اون جهت برسید کار سختی تردیدی هم درش نیست. و حالا فهمیدین چرا میگن آی من میزانه یعنی جهت اونه جهت اونه، اون که هم بشه همیچه درست دیگه بقیه اشت آسونه سخته مادامی که جهت خب این مجاهدت دیگه، سخته دیگه، خدایی سخته اجبالاً بر ریاضت کشید ولی باید بدون که ریاضت به چه معنایی هست یک و دو این که ریاضت چه اهدافی رو داره اینا بحثای سلوکی است دیگه کلامی نیست یعنی من نمیگم بسید یک راه اشناخ که دائمان به خودت سو زن داشته باشی به دیگران با به دیگران که اینو حرمت تا اینجا مبکره افراد توی ذهنشون یک معنای قلطی رو تصور بکنن و اون این که آقا فلانی تو که همش داریم میگی راه خداشناسی از جانشناسی شد راه خداشناسی از خودشناسی شد راه خداشناسی از مجاهدت شد پس یواش یواش داریم بینیم سراغ این حرف که یه حرف درست سیانه از طرق قیل الله انفاسه چه ها؟ خلاهه عدد انفاس الخلاه اولا این حدیث نیست یک دو موبده این کلام مرحوم ارز با که ملا احمد در کتاب شریف مصنوی تاقدیسش مصنوی تاقدیس بخون بخونید شعره اما شعرها اما شعره شعرهای خوب داره من خوشم بیان من یکی از کتاب های شعر که توصیح بکنم شد کتاب شعرشونه مستوی تاخدیس ایشون اونجا این بیان رو آوردن به عنوان دو به چهر ولی ما هم یعنی چیزی رو نداریم که راه رسیدن به خدا به اندازه عدد انفوس باشه. یعنی هر کسی یک راه داشته باشه راه رسیدن به خدا یا از طریق آیات الهیس یا از طریق خودت یا از طریق مجاهدت یا طریق چارم که بخواید بگیم؟ پس این فرمایش مرحوم الله احمد نراقی چیه مرحوم مجلسی یک تفسیر خوبی از این کلام داره. فرمایش, تفسیر، فرمایش مرحوم مجلسی. فهم مردم و خرده های ایشان در پذیرش مراتب عرفان و کسب اطمینان از نظر مقدار و چگونگی، شدت و ضعف کندی و تندی، حالت و علم و کشف و عیان متفاوت است ببینید ماها با هم متفاوتی یکی خیلی سریع الوصوره، یکی بتیع الوصوره یکی زود میگیره مطلب و یکی دیر میگیره مطلب یکی مطلب تا آخرش میگیری، یکی مطلب نه اصلا اولش هم بفهمید چیه در ادراک ما با هم متفاوتین ولی در راه با هم چیستین؟ واحدین دو دوتا در همه عالم چهار تا میشه مطا یکی زودتر میفهمه دو دوتا چهار تا میشه یکی خیلی دیرتر این رو میفهمه پس ثابت در همین جاولی ارز با که درک متفاوته حال انسان ها متفاوته است اگر چه اصل معرفت است و به بداهد یا با کوچکترین توجه حاصل می شود اما هرکس را است که خدای عزیز و او را از آن راه هدایت می کند. یعنی همه چی منجره به فطرت میشه. اما اینکه از چه راهی به فطرت برسی اینا با هم دیگه چی همان متفاوته چون برخی از زهد می برخی از سختی یکی از سختیه بیماری به فطرت میرسه یکی از سختی جبه و جنگ یکی از سختی مثلا فرد بفرمایید فقر و عدم امکانات و اینها به خدا میرسه من این رو در جلسات متعدد گفته بودم حالا اینم باز تکرار میکنم که به راه رسیدن به اون مسئله فطری متعدده ولی خداشناسی همواره چی آقا؟ فطریه به درص فطرت راه دیگه اما اینکه این فطرت شما به چه واسطه ای پویا بشه تبدیل به در واقع شکوفا بشه و تبدیل به فعلیت پیدا بکنه این ممکنه متفاوضه ما یه دوست داشتیم در جنگ به قول الا مزام که میگفتش که اولین تیری که در جاو ها زدن ما بودیم آخرین تیری هم که زدن ما بودیم یعنی قبل از همه رفت اونبر از همه هم اومدیم الا اسمش سهراب میگفتش به اینکه من این اجریسته بودم که اگه مرگم رسیده باشه به واسطه این ترکش باید رو اون ترکشی که داره میاده به شما شه اگه نوشته باشه صحرا من در عرض و حضور اولتون که سنگرم باشم به هم اصابت میکنه ولی اگه روش ننوشته باشن صحرا خب من اگر بیرونم باشم به هم نمیخوره اگرم بخوره عمل نمیکنه. چقدر عکس دیدید که موشک تو دست طرف بوده ولی عمل؟ این قبول داری؟ والله قبول نداری الان تایه ذهن داری تحلیل میکنی که پس تدبیر انسان چی بیشه یعنی اگه من وسط خیامو خواستم رد بشم مراقبت میکنم یا نه اینو کردی یا نکردی؟ قبول نداری دیگه من خودم اوستای کارم بفهمن برم چی کار میکنم. دیگه بعد از می صد سال درس گفتن نفهمم یه افاره که دیگه میفهمم چی دارم می اون یه فهم شهودیه یه یعنی فهم استدلالی نیست هزار تا استدلال بیارم برایت نمیفهمی باید تو معرضش قرار بگید تو بفهمی مادا میگم که تو معرزش قرار نگرفتی هرگز نمیفهمی فقط یه چیزهایی رو میشد یه اسفات یه اسفات گونج ناله داشتن به خاطر مثلا محبتی که داریم میگه خوب میگه هم ولی باور میکنی چو فطرتش چو کوفانه شده با آدمیان که شکوفانشه و خداشناسی اجاد هر کس از جراحی هر کس از جراحی فطرت شکوفا میشه ولی خداشناسی غیر فطرتی دیگه ای نیست یه دو استعدادها متفاوته ظرفیت ها متغیره نه که راه ها متعدده این یه حرف بسیار مناسبه حالا یکی دیگه از راه های خدا که خدا را به خدا بشناسید جهره عالی خدا را به خدا بشناسید دستور مورکه لیل آیه دوازده اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَا بیگمان هدایت بر حدوم ماست به پیغمبرش هم میگه قبول برم اصلا دنبال این نباش که تو بخوای مردم رو ان کن لا تهدی من احببت هم من اینکه تو بخوایی هدایت نمی کنم اینالله های یهدی من یه یعنی من خودم رو در اختیار حکی بخواهم میذارم این نیشه خداشناسی به واسطه خود خدا چه بکنیم در اون حوضه من را بگیریم؟ اون مهمه در اون حوضه من یشاقران پس خداشناسی به واسطه یکی آقا؟ خود خدا سؤالی مطرح می شود و آن که چگونه خداوند متعال خود را به مردم معرفی میکند و آنان را به سوی خود رهنمون نمون می شود؟ پاسخش رو حضرت همین از سلام فرموده، خیلی هم خوشگل گفته. اگر دقت کنیم خواهیم یافت که خداوند متعال خود را از هر طریق ممکن به مردم معرفی کرده و انواع و امکانات درونی و برونی خداشناسی را برای بشر فراهم کرده حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بیفرمد اعرفو الله بالله اعرفو الله بالله خدا را به خدا بشناسی و بعد خود وجود نازنینش اید بیان مبارک رو دارن عرفن الله بالله ما خدا را به خود خدا شناختیم لعننا این عرفناهو به اگر ما خدا شناسیمون عقلی باشد فهو و واهبها خود خدا عقلو داده و این عرفناهو به انبیائهی و رسلهی و حججهی و اگر شناخت ما از خدا وحیانی باشد به واسد باشد به واسطه رسول باشد به واسد حجت الهی باشد فهوه باعث هم و مرسل هم خود خداست که انبیا رو فرستاده خود خداست که بزرگتون که این ها رو مبعوس کرده باعث و مرسل هم و متخذ هم هجبن حججن و اونها رو به عنوان های الهی در واقع معرفی کرده و این عرفنا و به انفسنا و اگر ما خدا را از طریق شناخت نفس پیدا بکنیم فهمم محدثا ها خب خودش نفس را ایجاد کرده پس ما بخوایم خدا را به خدا بشناسیم این ستاس دیگه یا از عقل استفاده میکنیم که خودش داده واهبه یا از وحی استفاده میکنیم که خودش مرسله یا از نفس استفاده میکنیم که خودش محدثه بس از هر راهی که استفاده بکنیم باز خدا ما را در مسیر من یک قرار داده از. آنچه خداوند متعال برای آشنایی با خود در درون وجود انسان قرار داده سرشت خداشناسی عقل و قلب است که اینها تحت عوضاره های خداشناسی معرفی خواهند شد و آنچه در بیرون از وجود انسان قرار داده شده عبارت از وحی و انبیا، دو تا حجت. حجت درونی و حجت بیرونی هر توش کار خداست حجت های بیرونی باشه است در اون تعدید باشی خداشناسی حاصل نیست حجت درونی باشه حجت بیرونی باشه باز باش خداشناسی هم حاصل نیست چون هر دو را در کنار هم قرار داده و برای هر انسانی بر اساس ظرفیت وجودی او امکانات رو قرار داده پس خداشناسی بباسته کیست؟ خودشه وله و یهدی من یعنی که آقا من میخوام بردی که اینا رو برای گذشتم بیگه تو تو مسید اینا آقا نمیه خب نمیه من کنم وقتی نمیه من چی کارت کنم وزیفه ی انبیاء اله هایی امن ترکی است فرمودن هدایت فطرت عقل و زودودن موانع و اجاب های معرفت است شما عقلت و پویا بکن در مسیر انبیا موانع در واقع هدایت رو از بین و در مسیر انبیا میرسی به خدا ولایتی منیشا خیلی کار سختی نیست شما باید یک ایجاد ظرفیت بکنی ظرفیت تو فعال بکنی کامپیوترتو رو روشن بکنی و موانعش رو هم چکار بکنی برطرف بکنی ان شاءالله می‌رسی به خدا چون نرسی عمر نکردیم کار را ف خود حضرتش می‌فرمایند وصففی هم رسله او ووا سرایره من بیا اهل یهدو لهستعدو هم میین سااق و فترت جت بشن بیان میکنه در میان آنها ها پیامبران رو برانگیق و پیامبرانش رو پی در پی 124 تا هرج لازم بود و اد چه اتفقی بیفتد تا ادای میثاق فترت رو از آنها بقام شد که در عالم زر و هم بسته و, و خدا بستیم اونو میخواد چیزی در نمیخواد پس از قبل بارت گذشته چرا یادت نمیاد چون مانه داری چرا یادت نمیاد چون پویا نیست و یوزک روح و منسیع و یاداوری بکنم اون نعمتی فراموش شده نعمت فراموش شده چیه؟ الان به شما ها بگن نعمت فراموش شده ی هر انسانی شماها اگر خیلی آدم نازنینی باشید بگید امنیت هست و سلامت در حالی که نعمت منسیل هر انسانی خداست کما کماه و شعنی در انداز خودم در امنیت هست سلامتم سلامت هم نعمت خب در مقابل خدا که نعمت من ما این آجان و یسی رو لهم دفاعن العقول کارم بیا اینه که دفینهای عقل میارن بیرون قیرو همایات المقدره کاری که هم بیا قدرت خدا رو به انسان ها نشون میدن این کار هم بیاسه بود ما خودمون به هم بیاسه پس یک راه هم راه چیه آقا؟ بله یک راه خدا شناسی هم نست که به خدا خودمون بسپنیم به خدا خودمون بسپنیم که خیلی کار سخت چون هم باید عقل رو فعال بکنیم هم موانیش رو از کمار بکنیم هم خود به هدایت هم بیاسه به جمع ولی کامل تره. حالا اما این که این خداشناسی ها به چه طرقی اتفاق میفته من این ستا رو بگم تا بعد برسیم به اصل بحثم اصل بحثمون رو میره دیگه بخواستم از اولی که شروع کرده بخواستم همین حرفو بزنیم بخواستم بگیم طرقی دیگه هم وجود داره برای خداشناسی این چه طرقی برای شناخت خدا وجود داره یک طریق شناخت خدا از بحث نشانها بحثش گذشت طریق دوم شهود قلبیه که کامل تری نوشته در واقع ببخشید طریق دوم خودشناسی است طریق سوم چی ها بله خودشناسی است و مجاهدت است و دیگه شناخت خدا به خدا این چهار طریق این چهار طریق حالا ابزارش چیه با چه ابزاری میشه پیش رفت؟ ما چند تا ابزار در دست داریم یکی ابزار حسه خدا را هرگز به حس میشه شناخت نمیشه شنا، امکان نداره چون مافق حسه. یکی شناخت به قلبه. شهود قلبی. کامل ترین نوع شناخت، اگه بر کسی حاصل بشه. وجود ناظرین امام صادق علیه السلام میخونه القلب قلبو حرم الله فلا توسکن حرم الله غیر الله. قلب هر انسان جای خداست. غیر خدا رو در اونجا قرار قصبی. حال غیر خدا بره قسبیه. ای یک. وجودنا از است تعمیر در اسلام میفرما قلوب و عبادت طاهرا نماز و نظر الله قلب بندگان پاک محل نگاه خداست. خدا اونجوری نگاه میکنه. پاک باد باشیم تا نباشیم خدا به ما نظر نمیکنه. اول نظر میکنه بعد رسوخ پیدا میکنه. ولی الان ما نظر نمیکنه کنه چون خب پاک نیست قلب ما قلب ما شیطنت آمیزه قلب ما نفسانیه قلب ما دنیاییه مشکل داره تا این ها حل نکشه حل یک حدیث عالی حضرت رسول گرامی فرمودن که داود پیغمبر با خدا صحبت کرد در مولانجاتش الهی لکل ملک خزانتون فعین خزانتک، هر پادشاهی خزانه ای داره خزانه تو کجاست قال جل جلاله لی خزانتون برای من خزانه است اعظم من العرش عرش از عرش بزرگتر اوصا من الكرسی از کرسی وسیتر اینا جنبه های ملکوتی و اون خزان است. آت یبو من الجنه از بهش خوشبوتر از ینو من الملکوت زینتش بیشتر از ملکوت ارزوها المعرفه زمینش شناخته سماوها الایمان آسمانش ایمانه شمسها شوق خورشیدش اشتیاقه و قمرها المحبه ماهش محبت و نجوم ها ال ستارگانش اون الهامات درونیست و صحابه ها ال اقل عقل. عبرش عقله و متره ها رحمه بارانش رحمته و اسماره ها تا اح اطاعته سمره ها حکمه نتیجه رسیدن به سعادت و لها اربع تا چهار تا در داره العلم و الهل و السب و الرزا چهار تا درشه علا و حیل قلب بدون که اون قلبه قرب. ولی از اولش ما از کجا ارزها معرفت سماوها ایمان ما چقدر شناق داریم ما چقدر معرفت داریم ما چقدر ایمان داریم چقدر شوق بسوی از درق داریم چقدر محبت داریم چقدر الهامات داریم چقدر عقل داریم چقدر رحمت چقدر طاعت چقدر حکمت و علم و حلم و صبر و رضا کجاست تو اینا نباشه قلب انسان فعال میشه این عالی ترین نوع شناخت از تقله ولی برای همه حاصل نمیشه یه خداشناسی هم داریم خداشناسی تجربی مثل دند و تجربه. تجربهش فقط مثل اونها این که عرضششون جور خداشناسی تجربه هر کسی تو تجربه زندگیش خدا رو پیدا کرده در زندگی شخصی هر کس حالات و حوادث گوناگون پیش میآید که از یک سو حاکی از نقشه و تدویر مدبر است و از سوی دیگر خود در پدید آوردن اون نقشی نداره این دومش مهمه تدبیر هست ولی به تدبیر من نیست. مثل که تصمیم قطعی دارد کاری را انجام دهد که در واقع به زیان اوست ولی بدون اینکه دلیل عقلی خاصی داشته باشد از انجام دادن آن منصرف می شود معلوم شود اگر انجام میداد برای او زیان بار بود مثلا هم من اینو زیاد در اطراف دیدم حالا یه نمونه بگم یکی سی استخاره کرد که سوار بلم بشه بره از کوفه بکر بلا شد بره استخاره که استخاره شو بود اما جوری شد که سوار نشد سوارین این نشود نشد که قایق نشد قایق هم وسط ران قرخ شد همه مورد این آدم اصخاره شب خوب که خوبه یعنی شوق دیگه باید برهد من دیگه بلنرم. چرا؟ فکر میگونی چرا؟ تدبیر کرده بود نه خواب مونده بود نه ترافیک گیر کرده بود نه مرف هیچ تدبیری نهی اندیشته مگره که ای این آیه شریف تجلی پیدا کرده وعلمه عجب آیه آلیه. و علم ان الله یهولو بین المرع و قلبه. خدا حائل میشه این چه حائل شد نزش تصمیمشه عملی کنه این خداست این خداست ولی زرافت میخواد تا آدم این رو بفهمه زرافت میخواد تا آدم این رو بفهمه اصل این آیهر تاله اینجور ده از نگاهش گرده بودیم و علم بدانید ان الله یهول بین المرع و قلب خدا حائل میشه که تدبیر تو حکمت او رو از بین نه لذا تصمیم تو عزم بودی که ایک کار بکنه ولی او نزاش اتفاق میفته ای خداست ای خداست دومین معنایی که برای دومین معنایی که برای خداشناسی تجربی نتره میشه اینه که از قای من امیرالمؤمنین پرسیدم که چطور شد که خدا رو شناختی فرمود عرف الله سبحانه بهفسخ العذائم شناختم خدا را شناختی شد خدا به واسطه پاره شدن, و گشود شدن ها و حلالعقود گشوده شدن گرهها و کشف زر ولولیگه برطرف شدن سختی ها و گرفتاری ها امن ام اخل له نیه باره کسی که نیت خالص داشته اومده بیرون کاری که فکر بیکرده کرده انجام شده انجام شده میگه شالسم گفت عیبی مرفت عیبی مرفت عیبی مرفت شانست گفت خیلی بمعرفتی این خداشناسی را همه بود داشتی مکرر برای همه اتفاق افتاد میشه اتفاق نفت داشت این عبارت آخری که گفتم زیاد تو زندگیت گفتی شانس اون زدی اتفاق ماشین به اسم اون در شانست خیلی بمعرفتی این دو گفتم که ببینید که چقدر تو زندگی اتفاق افتاده بود چقدر تو خدا رو دست خدا را دیدی ولی نشداختی نشداختی خب خداشناسی تجربی هم راهون حالا اگر راه تنوین برداره آ خدا که داره فرمولش رو میگه آقا اصلا بیخواید تو دنیا بمبست نداشته باشی من که بهت هزار بار گفتا تو اهلش دیستی همون چه کار دستور مبارکه طلاق آیه دو بسته و من یتق الله یجع اللهو تقوی الهی پیش کنه تقوای الهی پیش کنه نه اوش نماز بکنه گناه نکنه شو تقوا معنای بازدارندگی داره تقوا در گناه نکردن نه در اطاعت کردن نهی نماز زیاد بخونی نمازهای مستحبی را بخونی اصل نماز تو بخونی که گناه محصوب بشه ترکش همین من یتقلایش اللهم اخوه جام اگه تو تقوی پیشه کنی یعنی گناه نکنی بمبست نداری کاسه چکنم کنم, کنم بسید نیست بمبست تو زندگیت من نمیذارم خب رو کنی ار من سال لا دسته میخواد تحریم باشه میخواد نباشه میخواد شدید بشه، بیخواد نباشه، بیخواد باشه میخواد نباشه میخواد دلار ده هزار تو باشه میخواد دلار هفت تا یک تومین باشه من و اونودخ میدم خب من به بدم میدم یه یعنی تو فکر میکنین من تابع دلارم خیلیبیعرفتی حالا یکیناقا اون وزیف دارن چه بکنم اون به خود او میگ رفتی به نداره. من قلام رو از آفتاب بیگویم من راشب به خدا دارم من اصلا کاری ندارم من میگم خدا میگه من میدم تو بگی نه نمیده میگه خب تو تقوا پیشه کو اگه من ندادم خب فرمولش هم که داره میده بخت که نکرده که بلابد کردن که کار سختیه یا خب خداشناسی از طریق جهانشناسی، خداشناسی از طریق نفسشناسی، خداشناسی از طریق خود خدا به ابزارهای حس که امکان نداره به ابزار قلب که عالیترین ترین شکلشه و به ابزار تجربه که دونمونش رو گفتیم و به ابزار عقل حالا اون بحثیر که ما انشاءالله اگر خدا اراده کنه از هفته بعد پی میگیریم این است خداشناسی از طریق صفات و اون هم بروش چی؟ عقل همه اینا رو گفتم که برسیم به اینجا ما انشالله هفته و اگر عمری باشه خدا رادی کرده باشه و ما این توفیق داده باشم که بیام اینجا و بیشیدم بخوام حرف بزنم میخوام میگم آخا خدا قادر است قدرت خدا به چه است. خدا عالم است قدر علم خدا به چه است؟ هفتش ده تا از این صفات و این که باهاش به شدت سر و کار دارین و هیچ ازش نمیدانیم، باید تفسیر بشه. ولی خب دیگه در ده اجمال تا برسیم که بگیم آقا خدا حکیم است خدای حکیم عادل است و این خدای عادل، اون چی که ازش بروز پیدا می کند عدل است مردم نگفتن به عدل بخوام صحبت بکنم گفتن موجب چی بخوام صحبت کنم صفات الهی تخطی از بحثم نکردم صفات الهی رو بشناسیم که حداقل قدری خدا رو بشناسیم یه قدری معرفتی کم میشه نسبت به برای ما میسولتن راه برای ما برای ما حالا آره بگیم اینا هم بگیم بفهمیم هم. که خیلی کار داره خلاصه باید نبیدونم دیگه حالا چی باید بگیم دیگه حالا حالا بریم علم خدا یعنی چیست خدا عالمی یعنی چی خدا قادره یعنی چی اگه راجع به قدرت خدا صحبت کردیم و همه حرفا حل شد که حل شد اگه حل نشد دیگه من حد چیم بگم باز حل نمیشه دیگه حل نمیشه دیگه بعد همش و جو همش الحمد لله